اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون کافران از چه چیز از یک دیگر سوال می کنند عن النبأ العظیم از خبری بزرگ الیهم فیه مختلفون همان خبری که آنها در آن اختلاف دارند كلا سيعلمون چون این نیست که آنها میاندیشند به زودی خواهند دانست ثم باز کلا نیست به زودی خواهند دانست الم نجعل الارض مهادا آیا زمین را بستری برای آسایش شما قرار ندادیم اوتادا و کوها را میخای آن قرار ندادیم و خالقناکم ازواجا و شما را جفت آفریدیم و جعلنا نومکم و خواب شما را مایه آرامشتان قرار دادیم و اللیل لباسا و شب را پوششی برای شما قرار دادیم و جعلنا النهار معاشا و روز را وسیله ای برای زندگی و معاش قرار دادیم و بناینا فوقکم سبعا شدادا و بر فراز شما هفت آسمان دشوار بنا کردیم و جعلنا سراجا و و خورشید را چراقی درخشان آفریدیم و انزلنا من المعصرات ما و از ابرهای بارانزا آبی فراوان فرو فرستادیم لنخرج به حبا ونباتا تا دانه و گیاه بسیار برویانیم و جنات الفافا و پر درخت با آن آب پرورش دهیم اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتَ بی گمان روز داوری میاد همگان است یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا روزی که در سور دمیده می شود سپس شما گروه گروه به محشر می آیید و فتحت السماء فکانت ابوابه و آسمان گشوده می شود پس دروازه دروازه می گردد و سیرت الجبال فکانت سرابه و کوها به حرکت آیند پس چون سراب گردند ان جهنم كانت مِرْصَادَ و بی گمان جهنم کمینگاهی است لِلطَّاغِينَ مَآبَ محل بازگشت برای سرکشان است لَبِثِينَ فیها اَحْقَابَ مدت زمانی دراز در آنجا بمانند لا يَذُوقُونَ فیها بردا ولا شرابا و در آنجا نه چیز خونکی میچشند و نه آشامیدنی گوارایی خواهند داشت إِلَّا حَمیمًا وَغَسَّاقًا جز آبی سوزان و مایه ای که چرک و خون است جزاء وفاقا این کیفر است مناسب و در خور اعمالشان. انهم كانوا لا حسابا زیرا که آنها هیچ امیدی به روز حساب نداشتند. و, و آیات ما را به شدت تکذیب کردند. کل شیئا احصیناه کتابا و ما همه چیز را در کتاب لوح محفوظ به شمارش نوشتیم فَذُوقُوا فلن زِيدَكُمْ الا عذابا پس کیفر اعمال خود را بچشید که چیزی جز عذاب بر شما نمی افزاییم اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا بیگمان برای پرهیزگاران کامیابی است. حدائق و اعنابه باغهای میبه و تاکستانها و کواعب و هوریانی جوان و همسن و سال و و جامهای لبریز و پیاپی از شراب پاکیزه بهشت لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا در آنجا نه سخن بیهوده میشنوند و نه دروغی جزاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حسابا. این پاداش از جانب پروردگار توست و بخششی ی در خور آنهاست رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا همان پروردگار آسمانها و زمین و آنچه در میان آنهاست همان خدای رحمان هیچ کس در آن روز یارای سخن گفتن با او ندارد يوم يقوم الروح والملايكه صفا لا يتكلمون إلا من اذن له الرحمن وقال صوابا روزی که روح و فرشتگان به صف ایستند هیچکس سخن نگوید جز کسی که خدای رحمان به او اجازه داده و او سخن درست و صواب گوید لذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا آن روز حق است پس هر کس که بخواهد بازگشتگاهی به سوی پروردگارش برگزیند اننا انذرناكم عذابا قريبا براستی ما شما را از عذاب نزدیک بین دادیم روزی که انسان آنچه را از قبل با دستهای خود فرستاده است میبیند و کافر میگوید ای کاش من خاک بودم بسم الله الرحمن الرحیم به نام الله بخشنده مهربان و النازعات غرقا و الناشطات نشطا و سبحا سوگند به فرشتگانی که جان کافران را به شدت بیرون میکشند و سوگند به فرشتگانی که جان مؤمنان را به نرمی و آسانی میگیرند و سوگند به فرشتگانی که به امر الله از آسمان به سوی زمین شناورند و سوگند به فرشتگانی که در اجرای اوامر الهی بر یکدیگر دیگر میگیرند. می گیرند و سوگند به فرشتگانی که به امر الهی کارها را تدبیر می کنند یوم ترجف تتبع روزی که پس از اولین دمیدن در سور زمین و کوه‌ها و همه چیز به لرزه در و در پی آن دمیدن دوم هش بیاید قلوب ابصارها خاشعه. در آن روز دلهایی سخت مسترب و ترسان است و چشمهای آنان از ترس و شرم شرمساری فرو افتاده است کافران در دنیا میگویند آیا ما پس از مرگ دوباره به حال اول خود بازگردانده میشویم شویم؟ آیا هنگامی که استخانهایی پوسیده شدیم و به خاک تبدیل گشتیم باز هم زنده می شویم؟ مالو تلك اذا كروه خاسره کو یاند اگر چنین وعده‌ای درست باشد آنگاه آن بازگشتی زیانبار است فانما فا هي شجره واحده فاذا فا هم بالساهره پس آن بازگشت تنها با یک بانگ مهیب است و ناگهان همگی بر عرصه زمین محشر ظاهر می شوند حدیث ای پیامبر آیا داستان موسا به تو رسیده است؟ ربه آنگاه که پروردگارش او را در سرزمین مقدس توبا ندا داد و فرمود اذهب الى فرعون به سوی فرعون برو که او تغیان کرده است و به او بگو آیا میخواهی از کفر و گناه پاک شوی؟ و من تو را به سوی پروردگارت هدایت کنم تا از او بترسی و فرمان بردار شوی؟ فاراه الاية الكبرى فكذب وعصى پس موسی معجزه بزرگ را به او نشان داد اما او تکذیب و سرکشی کرد ثم ادبر يسعى سپس پشت کرد و به کوشش و تلاش علیه او پرداخت فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلی پس قومش را جمع کرد و نداداد و گفت من پروردگار برتر شما هستم الله پس الله او را به عذاب آخرت و دنیا گرفتار کرد بیگمان در این واقعه برای هر کس که از الله می ترسد ابرتی است آنتم اشد خلقاً بناها؟ آیا آفرینش شما بعد از مرگ سخت تر است؟ یا آسمانی که الله آن را بنا کرد؟ سقف آن را برافراشت و به آن شکل و نظم داد اقا ش ایلهها و اخجب و و شبش را تاریک و روزش را روشن گردانیدداد و زمین را بعد از آن گسترانید اخ و م و از آن آب چشمه ها و چاهها ها و چراگاهش را بیرون آورد. والجبال ارساها متعلقا لكم و را محکم و استوار بر روی زمین قرار داد همه اینها برای بهره شما و چهار پایانتان است فاذا فا جاءت پس هنگامی که آن حادثه بزرگ قیامت فرا رسد يوم يتذكر الانسان ما سعا. دران در آن روز انسان تمام اعمال و تلاش خود را به یاد میآورد و بر ریزت چخیم و جهنم برای هر بیننده ای آشکار می شود فأما من پس. آن کس که تغیان و سرکشی کرده باشد و زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح داده باشد، بی تردید جهنم جایگاه اوست. و اما من نخاف مقام ربه و نفس عن الهوى و اما کسی که از ایستادن در حضور پروردگارش بیمناک بوده. و نفس را از هوا و باز داشته باشد فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى قطعا بهشت جایگاه اوست يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا ای پیامبر در باره قیامت از تو می که در چه زمانی واقع می شود؟ فیمه انت من ذکراها را با یادآوری این سخن چه کار است؟ سرانجام و منتهای علم آن نزد پروردگار توست است. من تو فقط بیم دهنده کسانی هستی که از آن می‌ترسند روزی که کافران قیامت را ببینند چون این احساس می کنند که گویی در دنیا جز یک شامگاه یا بامداد به سر نبرده اند بسم الله الرحمن الرحیم به نام الله بخشنده مهربان و تولا. چهره در هم کشید و روی برگرداند از اینکه آن نابینا به نزدش آمد و, ما يدريك و ای پیامبر تو چه میدانی؟ شاید او از گناهانش پاک شود؟ او روففهه ل یا پند گیرد و این پند به سودش باشد من نیستونه اما آن کس که از ایمان بینازی میورزد تله صده پس تو به او روی می آوری ما علیک الله ذکه؟ در حالی که اگر او خود را از کفر پاک نسازد ایرادی بر تو نیست اما, من اما کسی که شتابان به سراغ تو می آید و, و از الله می ترسد فأنت عنه پس تو از او غافل میشوی و به دیگران می پردازی. <تصفيق> هرگز چونی نیست بیگمان، این آیات تذکر و یادآوری است پس هر کس بخواهد از آن پند گیرد در صحیفه های ارجمندی ثبت است مطهره در جایگاهی بلند پایه و پاکیزه از پلیدی سفره در دست سفیران وحی است که بزرگوار و نیکوکارند قتل ما مرگ بر انسان کافر چقدر ناسپاس است من این خلقه الله او را از چه چیز آفریده است من نطفت خلقه فقدره او را از نطفه ناچیزی آفرید و سپس موزونش ساخت ثم السبیل یسره آنگاه راه را برایش آسان نمون ثم أماته آنگاه بعد از پایان عمر او را میراند و در قبر پنهان نمود ثم اذا شاء انشره. سپس هرگاه که بخواهد او را زنده می و بر می <تصفيق> هرگز چنین نیست که او میپندارد او هنوز آنچرا که الله فرمان داده به جای نیاورده است <تصفيق> پس انسان باید به غذای خیش و آفرینش آن بنگرد ما آب فراوان از آسمان فرو ریخ سپس زمین را از هم شکاف دیم آنگاه در آن دانه های فراوان رویاندیم و عنب و قبا و انگور و سبزی خوراکی بسیار و زیتون و نخلا و زیتون و نخل و حدائق غلبا و باغهایی انبوه و پردرخت و فاکهتا و اببا و انواع میوه و علوفه پدید آوردیم ولی همه اینها برای گیری شما و چهار پایانتان است جاءت پس هنگامی که آن صدای مهی به قیامت فرارسد سد یوم یفر المرء من اخیر روزی که انسان از برادرش می گریزد و امه و و از مادرش و از پدرش و صاحبته و بنی و از زنش و پسرانش نیز می گریزد لیکل منهم یوم شنوی در آن روز هر کس را کاری است که او را به خود مشغولش دارد هایی در آن روز گشاده و روشن است به خاطر نعمت و رحمت الله خندان و شاد است يوم اذن عليها غبره و جیی او معائظ مع و چهرههایی در آن روز عبار آلود است درهقها روح سیاهی و تاریکی آنها را پوشانده است اولاائیک هم کفرات الفجره. اینان همان کافران بدگرد بسم الله الرحمن الرحیم اذا الشمس كورت هنگامی که خورشید در هم پیچیده شود و اذا كدرت و هنگامی که ستارگان بی‌نور شوند و ایده الجبال سيرت و هنگامی که کوه‌ها به حرکت درآیند، و عطلت و هنگامی که ماد شتوران باردار رها شوند و ایزا الوحوش حشرت و هنگامی که جان وران گرد آورده شوند و ایزا و هنگامی که دریاها جوشان و برافروخته شود و نفوس زوجت. و هنگامی که روح ها قرین شوند و, سئلت. و هنگامی که از دختر زنده به گور شده پرسیده شود بی قتلت. به کدامین این گناه کشته شده است و, صحف نشرت. و هنگامی که نامه های اعمال گشوده شود وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَحِینَگامی که پرده از روی آسمان بر گرفته شود وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَحِینَگامی که دوزخ افروخته و شعله برگردد وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ وَحِینَگامی که بهشت نزدیک آورده شود علمت نفس ما احبرت. در آن هنگام هر کس خواهد دانست چه چیزی را برای آخرت خود حاضر و آماده کرده است فلا اقسم بالخنس پس سوگند به ستارگانی که باز می گردند الجوار الكنس. شتابان حرکت می کنند و از نظر پنهان میشوند و صبح اذا نفس و سوگند به شب هنگامی که تاریکیش نفس و و پشت کند و صبح اذا نفس و سوگند به صبح هنگامی که بدمد این لقول رسول و بیگمان این قرآن سخن فرستادی بزرگوار است است قو قوت عندذی العرش که مقتدر و نیرومند است و نزد خداوند صاحب عرش مقام و منزلت بالایی دارد در آسمان ها مورد اطاعت فرشتگان و امین وحی است و ما صاحب بمجنون و ای مردم هم نشین شما محمد دیوانه نیست و لقد رآه بالافق المبين. المبین و براستی او را در افق روشن دیده است و ما هو علی الغیب بضنین و او بر آنچه از طریق غیب به او وحش شده بخیل نیست و ما هو بقول شیطان الرجیم و این قرآن گفته شیطان رند شده نیست فا تذهبون پس به کجا می روید این هو قرآن چیزی جز پند و اندرس برای جهانیان نیست من شاء منكم برای کسی از شما که بخواهد راه راست در پیش گیرد و ما تشاؤن إلا أن يشاء الله رب العالمين و شما نمی خواهید مگر آن پروردگار جهانیان بخواهد بسم الله الرحمن الرحیم ایده السماء انفطرت هنگامی که آسمان شکافته شود و الكواكب الكواکب انتثرت و هنگامی که ستارگان پراکنده شوند و فرو ریزند و ایده البحار فجرت و هنگامی که دریاها به هم آمیزند بروان گردند و القبور بعثرت و هنگامی که قبرها زیرو رو شوند علمت نفس ما قدمت و اخرت. در آن هنگام هر کس خواهد دانست آنچه را که پیش فرستاده و آنچه را که باز داشته است یا <تصفيق> ای انسان چه چیزی تو را نسبت به پروردگار کریمت مغرور ساخته است آنکه تو را آفرید آنگاه شکل و اعضایت را تمام کرد سپس معتدل گرداند في أي ما شاء و به هر شکلی و صورتی که خواست تو را ترکیب نمود كلا بل تكذبون بالدين. هرگز چونی نیست که شما گمان میکن بلکه شما روز جزا را تگزیب میکن و این و بیگمان نگهبانانی از فرشتگان بر شما گمارده شده کرامن کاتبین که نویسندگانی بزرگوار هستند یعلمون ما تفعلون آنچه را انجام میدهید میدانند و اعمال نیک و بد شما را یادداشت میکنند. اینن الابرا نیکان در نعمت های بهشت هستند و یقیناً یقینا بدکاران در آتش جهنمند، يوم الدين. روز جزا به آن درایند و بسوزند و ما هم عنها بغائبین و هرگز آنان از آنجا غائب نباشند و ما ادراک ما یوم الدین و تو چه میدانی که روز جزا چیست؟ دم ما ما يوم باز تو چه میدانی که روز جزا چیست؟ يوم لا تملك نفس لنفس والأمر والامر يومئذ لله روزی که هیچ کس قادر به انجام کاری برای دیگری نیست و در آن روز حکم و فرمان از آن خداست بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان لل وای بر کم فروشان الذي إذا اكتالوا على الناسوفون کسانی که چون برای خود از مردم پیمانی می کنند، حق خود را کامل میگیرند وإذا كلهم وزنوهم يخصغون و هنگامی که میخواهند برای آنان پیمانی یا وزن کنند. کمی کم گذارند که <تصفيق> ان آیا آنها گمان نمی کنند که قیامت فرا می رسد و از قبرها برانگیخته میشوند لیوم عظیم در روزی بزرگ؟ يوم یقوم الناس لرب العالمین همان روزی که مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان میستند کلا این کتاب الفجار لخی هرگز چونی نیست که کافران پنداشته اند. حقا که نامی اعمال بدکاران در سجین است و ما ادرا کما و تو چه دانی که سجین چیست؟ کتاب مرقوم است که اعمال بدکاران در آن نوشته شده است ویلون یومئذی للمکذیبین در آن روز وای بر تقذیب کنندگان الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ آنان که روز جزا را انکار و تقذیب می کنند وَمَا يُكَذِّبُ به و كل معتد اثيم کسی آن روز را تکذیب نمی کند اذا تتلى عليه قال چون آیات ما بر آنها تلاوت شود گوید این افسانه های گذشتگان است كلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون هرگز چونین نیست که آنها گمان می کنند. بلکه به سبب آنچه کرده اند بر دلهایشان زنگار بسته است كلا این عن ربهم لمحجوبون هرگز چونی نیست که آنها میپندارند بیگمان آنها در آن روز از دیدار پروردگارشان یقینا محجوب و محرومند ثم انهم لصال الجحيم سپس بعد از حساب مسلما وارد دوزخ میشوند ثم يقال هذا الذي كنتم بهی <سؤال> آنگاه به آنها گفته می شود این آتش همان چیزی است که آن را تکذیب می کردید کلا این کتاب الابرار لفی <سؤال> هرگز چونی نیست که آنها میپندارند بیگمان نامه اعمال نیکوکاران در الیین است و ما ادراک ما علیون و تو چه که چیست کتاب مرقوم کتابی است که اعمال نیکوکاران در آن نوشته شده است یشهده المقربون که مقربان درگاه الهی بر آن حاضر شبند و گباهی دهند اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيم همانا نیکوکاران در های بهشت هستند علی الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ بر تخت تکیه زده و می نگرند خرمی و نشات نعمت را در چهره هایشان می بینی و می شناسی من رحیق آنها از شراب ناب مهر شده نوشانده و سیراب میشوند. تا مهمسک وفی ولی کفلیت نفصل متنافزون مهری که بر آن نهاد شده از مشک است و در این شراب و نعمتهای دیگر بهشت مشتاقان باید بر یکگر پیشی گیرند و میز جومین تصمیم. و آمیزش از تسنیم است عین یشرب بها المقربون همان چشمی که مقربان درگاه الهی از آن می نوشند ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا همان کسانی که جرم و گناه کردند پیوست در دنیا بر کسانی که ایمان آورده بودند میخندیدند و, و هرگاه مؤمنان از کنارشان میگذشتند با چشم و ابرو به هم اشاره میکردند و اذا و چون به سوی خانواده خود باز می گشتند شادمان و خندان باز می گشتند و, اذا قالو انها و هنگامی که مؤمنان را می‌دیدند، می‌گفتند: بیگمان اینها گمراهانند و ما ارسلو عليهم در حالی که آنان برای مراقبت و نگهبانی بر مؤمنان فرستاده نشده بودند فالیوم الذین آمنوا من پس امروز کسانی که ایمان آورده اند به کافران میخندند عَلَ الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ آراسته نشسته و می‌نگرند هل زُيِّنَ لِلْكُفَّارِ ما كَانُوا يَفْعَلُونَ آیا کافران پاداش آنچه چه می‌کردند دریافت کرده‌اند بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان إذا السماء شقت هنگامی که آسمان شکافته شود و اذنت لربها و حققت. و به فرمان پروردگارش گوش دهد و تسلیم شود و سزاوار است که چنین کند و مدت و هنگامی که زمین گسترده و هموار شود ولقت و تخاللت و, و هرچهرا در درون خود دارد بیرون ریزد و توهی گردد و اذنت لربها و, حقت و به فرمان پروردگارش گوش دهد و تسلیم شود و سزاوار است که چنین کند. يا <mile> أيها <و> الإنسان إنك كادح إلى ربك كدح فملاقي. ای انسان، بیگمان در راه رسیدن به پروردگارت سخت تلاش و کوشش میکنی، پس او را ملاقات خواهی کرد. تماماً اوتی کتابه او به پس اما کسی که نامه اعمالش به دست راستش داده شود فزوفیحاسب حسابا یسیر به زودی به حسابی آسان محاسبه می شود و یوم قلبو الی اهلی و شاد و مسرور به سوی خانواده اش باز می گردد و اما من اوتی کتابه وراء ظهره و اما کسی که نامه اعمالش از پشت سرش به او داده شود فسوف یدعو ثبورا پس به زودی مرگ و نابودی را می طلبد و یصل سعیرا و به آتش جهنم شعلور اهلی آید بیگمان او در دنیا میان خانوادی خود شادمان بود به راستی او گمان میکرد هرگز باز نخواهد گشت بلا این ربهو کان بهی بصیرا آری همانا پروردگارش نسبت به او بینا بود بلا اقسم بشفق پس به شفق سوگند میخورم. خورم وما و اللیل و ما وسق سوگند به شب و آنچرا فرو می پوشد. والقمر و القمر و سوگند به ماه چون کامل شود طبقاً عن که شما پیوسته از حالی به حال دیگر منتقل می‌شوید فما لهم لا یؤمنون پس آنان را چه شده که ایمان نمی آورند و اینا قرئا القرآن لا يسجدون. هنگامی که قرآن آنها تلاوت شود سجد نمی کنند. بل الذين كفروا يكذبون. بلکه کسانی که کافر شدند پیوسته آیات الهی را تغذیب می کنند. والله اعلم بما یوعون و خداوند به آنچه در دل پنهان می‌دارند داناتر است فبشرهم بعذاب الیم پس ای پیامبر آنان را به عذابی دردناک بشارت ده اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ مگر کسانی که ایمان آوردهاند و کارهای شایسته انجام دادهاند که برای آنها پاداشی قاط نشدنی است بسم الله الرحمن الرحیم و السماء ذات البروج قسم به آسمان که دارنده برج هاست و الموعود و ساگانز به روز ما و شاهد و مشهود و سوگند به شاهد و مشهود قتل اصحاب الاخدود. اصحاب اخدود به حلاکت و نابودی رسیدند انار ذات الوقود خندقهای پر و افروخت از هیزمهای بسیار اذهم علیها قعود هنگامی که بر کناری آن نشسته بودند و هم علاما يسعلون بالمؤمنین شهود و آنان آنچه را با مؤمنان انجام میدادند تماشا میکردند و ما نقمو منهم الا این یؤمنو بالله العزیز الحمید و هیچ ایرادی از آنان نگرفتند جز این به خداوند پیروزمند ستود ایمان آورده بودند الَّذِي له مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق پرستی کسانی که مردان مؤمن را و زنان مؤمنه را شکنجه و آزار دادند سپس توبه نکردند پس برای آنها عذاب جهنم است و برایشان عذاب آتش سوزان است إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير همانا برای کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند باغهایی از بهشت است که نهر حاضر درختان آنجاری است و این کامیابی بزرگ است. این نبط مجازات و فرو گرفتن پروردگارت سخت است. انه هو یبدئ و یعید اوست که آفرینش را آغاز می کند و دوباره بعد از مرگ باز می گرداند و هو الغفور الودد و او آمر زندگی است ذل عرش صاحب عرش مجید است فعال لما یرید آنچرا بخواهد انجام می دهد. هل اتاک حديث الجنود ای پیامبر آیا داستان لشکرها به تو رسیده است فرعون و ثمود اشکاریان فرعون و قوم سمود بل للذین کفروا فی تکذیب بلکه کسانی که کافر شدند پیوسته در تکذیب حق هستند والله منهم ورائهم محیط و خداوند از هر سو بر آنها احاطه دارد بل هو قرآن مجید، بلکه این قرآن مجید است فی لوح محفوظ که در لوح محفوظ نگاشته شده است بسم الله الرحمن الرحیم والسمم وبار سوگند به آسمان و سوگند به تاارخ وما ادراك مبار و تو چه میدانی تاریخ چیست؟ ان ننجقیبه همان ستاری درخشان است این؟ كل عليها حافظ. هیچ کس نیست مگر آن که بر او نگهبان و محافظی از فرشتگان است خلق. پس انسان باید بنگرد که از چیز آفریده شده است خلق ما از یک آب جهنده آفریده شده است که از میان پشت و سینه بیرون می آید على رجعه لقادر بی گمان او بر باز گردانیدن او پس از مرگ قادر است یامت بل السائ روزی که نهانها آشکار می شود فمال هم من قولا ناخیر پس او را هیچ نیرو و یاوری نیست والسممعائذات الجر سوگند به آسمان پرباران والربذ الصند و به زمین پرشکاف بیگمان این قرآن سخن جدا کننده حق از باطل است و, ما هو و آن سخن حزل و بیهوده نیست بیگمان آنها پیوسته هیله و نیرنگ می کنند و کی و کیدا و من هم حیله و تدبیر می کنمم ومهلكاافین رویدا. رو پس کافران را مهلت بده اندکی آنان را رها کن بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشی مهربان. نام پروردگار بلند مرتب را به پاکی یاد کن خلق همان که آفرید پس درست و استوار ساخت وال و همان کسی که اندازه گیری کرد پس هدایت نمود و اخرج و آن کسی که چرا گاه را رویانید و جعل احوا؟ سپس آن را خشک و سیاه گردانید زن فلا تنس ما به زودی قرآن را بر تو میخوانیم پس هرگز فراموش نخواهی کرد. إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا مگر آنچه را که خدا بخواهد همانا او آشکار و نهان را میداند وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى و ما تو را برای راه آسان توفیق میدهیم فذکر این نفعت الذکرا پس اگر پند مفید باشد پنده سی الذکر من یخشه به زودی کسی که از خدا می ترسد، پند میپذیرد پذیرد و یتجنب اشقا و بدبخترین مردم از آن دوری می گذیند. الذي النار الكبرى. همان کسی که در آتش بزرگ جهنم در خواهد آمد ثم لا يموت ولا سپس در آن آتش نمی میرد و نه زنده میماند قد من تذکه. یقینا کسی که خود را پاک و تسکیه کند رستگار شد و, اسم ربه فصله. و نیز کسی که نام پروردگارش را یاد کرد پس نماز گذارد بل تؤثیرون الحیات الدنیا بلکه شما مردم زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح می دهید. وَالْآخِرَتُ خَيْرٌ وَأَبْقَاهُ در حالی که آخرت بهتر و پاینده تر است اِنَّ هذا لَفِ الصحف الْأُولَى به راستی این پندها در صحیفه های پیشین نیز بود صحیفه ابراهیم و موسی صحیفه های ابراهیم و موسی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشندی مهربان هل اتاک حدیث الغاشیه ای پیامبر آیا خبر غاشیه به تو رسیده است اجوه یوم اید خاشعه چهرههایی در آن روز خار و زلیل خواهند بود عاملت ناصبه در دنیا پیوسته تلاش کرده و خسته شده و چون در راه حق نبوده نتیجه ای ندیده اند نارا حامیه در آتش سوزان درآیند آیند تسقا از چشمه بسیار داغ به آنها نوشانده می شود لهم طعام الا من ضریع تعامی جز از ذریع ندارند لا یسمن ولا یغنی من جوع که نه آنها را فر بکند و نه دفع گرسنگی نماید وجوه يومئذ ناعمه. و چهرههایی در آن روز شاداب و تازه باشند. لسعيها راضیه. و از سعي تلاش خود خشنودند. فی جنت عالیه. در بهشت برین هستند. لا تسمع فيها لغيه. در آن هیچ سخن بیهودعی نمی شنوند عین در آن چشمه های آب روان باشد در آن تخت های زیبای بلند پایه است و, و جام هایی که در کنار چشمه ها نهاده شده و نمارق مصفوفه و پشتی ها بالش های منظم چیده شده و زرابی مبثوفه و نیز فرش های گرانبها گسترده شده است افلا ینظرون الى الابلی کیف خلقت؟ آیا کافران به شطر نمی که چگون آفریده شده است و الى كيف رفعت. و به آسمان نمینی که چگونه برافراشته شده است. و الجبال نصبت و به کوه نگاه نمی کنند که چگونه محکم بر زمین نصب شده است. و الارض كيف سطحت. و به زمین نمینی که چگونه گسترده شده است. فذکر انما مذکل. پس ای پیامبر پند بده که تو تنها پند دهنده ای لست علیهم بمسیطر. تو بر آنها مسلط و چیره نیستی که بر ایمان مجبورشان کنی الا من مگر کسی که روی گردانت کافر شود فیعذبه الله العذاب الأكبر پس خداوند با عذاب بزرگ او را عذاب میکند ان الينا ايابهم همانا بازگشت آنها به سوی ماست ثم ان علينا حسابهم سپس بی گمان حسابشان نیز با ماست بسم الله الرحمن الرحیم و به صبح و لیال و به شبهای دهگانه و والوتر و به زوج و فرد و, اذا و سوگند به شب هنگامی که حرکت می کند و میرود هل في ذلك قسم حجر آیا در این چیزها سوگندی برای صاحب خرد نیست تر كيف فعل ربك بعاد؟ ای پیامبر آیا ندیدی که پروردگارت با قوم عاد چه کرد؟ ارم ذات ارم که دارای ستونها و قامت بلند بودند التي لم مثلها که همانند آن در شهرها آفریده نشده بود وسمود الذي نجب صخر را باللو و نیز قوم سمود آنهایی که صخره های سخت را از کنار وادی میتراشیدند و برای خودخانه می ساختختند وفروند الأوت و فرعون صاحب میخواه. همان طغوا في البلاد همان کسانی که در شهرها طغیان و سرکشی کردند و پس در آنها بسیار فساد به بار آوردند فصب عَلَيْهِم رَبُّكَ سوت عذاب انگاه پروردگارت تازیانی عذاب را برانان فرو آورد اینا ربک یقینا <اواد> <اواد> پروردگار تو در کمینگاه است فاممل انسان الى مبتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اکرامن. پس اما انسان هنگامی که پروردگارش او را بیازماید و او را گرامی دارد و به او نعمت بخشد مغرور می شود و می گوید پروردگارم مرا گرامی داشته است و اما مبتلاه فقدر رزقه و اما هنگامی که او را بیازماید پس روزیش را بر او تنگ ناامید ناامید شود و میگوید پروردگارم مرا خار کرده است كلا بل لا تكرمون اليتيم هرگز چونی نیست که شما میپندارید بلکه یتیم را گرامی نمی دارید ولا تحاضون على طعام المسكين و یک دیگر را بر اطعام مستمندان ترقیب و تشویق نمی کنید و التراث و میراس را حریسا نمی خورید و حق دیگران را نمی دهید و حبا جمع. و مال و ثروت دنیا را بسیار دوست دارید هرگز چون نیست که شما گمان می کنید هنگامی که زمین سخت در هم کوبیده شود و هموار گردد و ربك ربک و صفا صفا و پروردگارت برای داوری بیاید و نیز فرشتگان صف در صف بیایند وج م بجه یو مئ تذكر الساننو لهذرا و در آن روز جهنم را بیاورند در آن روز انسان متذکر می شود. و اما این تذکر چه فایده ای برای او دارد یقول یا ليتنی قدمت لحیاتی میگوید ای کاش در دنیا برای این زندگیم چیزی از پیش فرستاده بودم فیوم اذی الله یعذب عذابه احد پس در آن روز هیچ کسی همانند عذاب او عذاب نمی کند و يوثق و هیچ کس همچون بند کشیدن او کسی را بند نکشد یا المطمئنه ای روح آرام یافته ارجعی الی ربک راضیت به سوی پروردگارت بازگرد در حالی که تو از او خوشنودی و او از تو خشنود است فدخولی فی عبادی پس در زمری بندگان خاص من در آی و دخولی جنتی و به بهشت من وارد شو بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشندی مهربان لا اقسم به هذالبلد سوگند به این شهر و تحل حلن به و تو در این شهر ساکنی و والدی و, ولد. و سو به پدر و فرزندانش. لقد خلقنا الإنسان في كبد. یقینا ما انسان را در رنج آفریدیم. ان يقدر عليه أحد. آیا او گمان می کند هیچ کس بر او توانا و قادر نیست؟ یا قولو اهلت تو مللو مال زیادی را تباه و خرج کرده ام؟ آیاحسب علمراو احد آیا میپندارد هیچکس او را ندید نجعل ننجعل عین آیا برای او دو چشم قرار ندادیم؟ و لسانا و شفتین و یک زبان و دلب و هدیناهن نجدین و او را به دراه خیر و شر راه نمایی کردین فلقت حمل پس به گردنی سخت قدم نگذاشت و نیامد و ما ادراک و تو چه دانی گردنی سخت چیست؟ فکرقبه. آزاد کردن برده است او اطعام فی یوم ذی مسغبه یا تعام دادن در روز قهطی و گرسنگی یتیمن ذا مقربه یتیمی از خیشاوندان او ممسکینا ذمت تابا مستمندی خاک نشین را ثم كان من الذي آم وتوص ب الصابری وتوصوب الموحما از کسانی باشد که ایمان آوردهاند و یکدیگر را به صبر سفارش کرده اند و یکدیگر را به مهربانی توصیه نمودهاند. اولائی اصحاب المیمنه اینان اهل سعادتند والذین كفروا کفروا هم اصحاب و کسانی که به آیات و نشانه های ما کفر ورزیدند، آنان اهل شقاوتند علیهم نار مقصده بر آنها از هر سو آتشی سرپوشیده است که راه فرار ندارند بسم الله الرحمن الرحیم و الشمس و ضحاها سوگند بخورشید و روشنی آن والقمر اذا تلاها و سوگند به ماه هنگامی که بعد از آن در و النهار اذا جلا و سوگند به روز هنگامی که آن را روشن و جل بگر کند و اللیل اذا و سوگند به شب هنگامی که او را بپوشاند و السماء و ما بناها. و سوگند به آصبان و به آنکه آن را بنا کرد و الارض و ما طحاها و سوگند به زمین و به آنکه آن را گسترانید و نفس و ما سواها و سوگند به جان انسان و آنکه آن را آفرید و نیکو گردانید فألهمها فجورها و تقواها سپس بدی ها و پرهیزگاری هایش را به او الهام کرد قد افلح من محققا هر کس نفس خود را تزکیه و پاک کرد رستگار شد و, قد خواب من و یقینا هر کس که آن را با گناه آلود ساخت نومید و زیانکار شد کذبت ثمود بطغواها قوم ثمود از روی سرکشی و تقیانشان پیام برشان را تکذیب کردند ان بعث اشطاها آنگاه که شقی ترینشان برای اقدام به جنایت برخواست فقال لهم رسول الله ناقت الله وسقياها پس پیام بر خدا صالح به آنها گفت ماد شطر خدا را با آبش خورش واگذارید فکذبوه فعقروها فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها ولی آنها او را تکذیب کردند آنگاه ماد شطر را پی کردند پس پروردگارشان به سبب گناهانشان بر سرشان عذاب آورد و با خاک یکسان کرد و, لا و خداوند از سرانجام آن بیم ندارد بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان و اللیل اذا سوگند به شب هنگامی که همه چیز را بپوشاند وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّهُ و سوگند به روز هنگامی که آشکار شود وَمَا خَلَقَ الْذَكَرَ وَالْأُنْسَهُ و سوگند به آنکه نر و ماده را آفرید اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَدْتَهُ که یقیناً سعی و تلاش شما مختلف است فَأَمَّا من أَعْطَى واتقا پس اما کسی که در راه خدا بخشید و پرهیزگاری کرد و صدق و سخنان نیک را تصدیق کرد فَسَنُوْ يَسِّرُهُ پس ما او را برای راه آسان توفیق می دهیم و من بخل وست نه و اما کسی که بخل بررزید و بیناضی طلبید وكذببلحصنا و نیز سخنان نیک را تزیب کرد و سنوی سر روول العصوع پس به زودی او را برای راه دشوار سرخ می دهیم. وما يغني یغنی عنه ماله اذا ترده. و هنگامی که سرازیر جهنم شود مالش به حال او سودی نخواهد داشت. إن علینا للهدى مسلما هدایت و راه نمایی کردن بر آخده ماست. و این لنا للآخره و و محققاً آخرت و دنیا از آن ماست. نارا پس من شما را از آتشی شعل بر بیم دادم. لا إلا به آن آتش کسی جز ترین مردم در نیفتد، الَّذی كذب همان کسی که آیات ما را تکذیب کرد و, و به پرخیز کار ترین مردم از آن دور داشته می شود همان کسی که مال خود را در راه خدا می بخشد تا پاک شود و مال احد عندهو من نعمت تجزه و هیچ کس را بر او نعمت و حقی نیست تا بخواهد با انفاق پاداش دهد إلا بتغاء وجه ربه الأعلى. مگر برای به آوردن وجه و خوشنودی پروردگار برترین و به راستی خوشنود خواهد شد بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان سوگند به آغاز روز والليل اذا و سوگند به شب هنگامی که آرام گیرد ما ودعك ربك وما قلى <تصحنت> تو را وانه گذاشته و بر تو خشم نگرفته است و خير لك من ومسلما آخرت برای تو از دنیا بهتر است قل سوف يعطيك ربک فترضى و به زودی پروردگارت به تو آنقدر عطا کند که خشنود گردی الَم یَجِدْكَ یَتِیماً فَآوَى آیا تو را یتیم نیافت پس پناه داد و وجد که ضَالّاً فَهَدَى و تو را راه نا و سرگشت یافت پس هدایت کرد و وجدک عائلا فأغنه و تو را فقیر یافت پس بینیاز نمود فأما اليتیم فلا تقهر پس تو هم یتیم را میازار و السائل فلا تنهر و سؤال کنند را مران و با او خشونت نکن وأما بنعمت ربك فحدث و نعمتهای پروردگارت را بازگو کن بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان الم لك صدرك ای پیامبر آیا ما سینه را برایت نگشودیم و وضعنا عنك وزرك و بار سنگین تو را از دوش تو بر نداشتیم الذي ام ظهرك همان باری که بر پشت تو سنگینی می و رفعنا لك ذكرك و نام و آوازی تو را بلند ساختیم فإن پس مسلما با هر دشواری آسانی است انما مع مسلما با هر دشواری آسانی است فاذا پس هنگامی که از کار و امور دنیا فارغ شدی به عبادت پروردگارت بکوش و رَبِّكَ ربک و به سوی شو بسم الله الرحمن الرحیم و التین و الزیتون به و سوگند به تور سینا و هذا البلد الامین و سوگند به این شهر امن لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. یقینا ما انسان را در بهترین صورت و هیئت آفریدیم ثُمَّ رَدَدَنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ سپس او را به پایین ترین مرحله برگرداندیم الا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ ممنون مگر کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند پس برای آنها پاداشی قط نشده نیست فما که بعد بالدين پس ای انسان چه چیز بعد از این همه دلایل روشن تو را به تکذیب روز جزا وامی دارد الیس الله باحکم الحاکمین آیا خداوند بهترین داوران به حکم مطلق نیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان اقرأ بسم ربکالذی خلق ای پیامبر، بخوان به نام پروردگارد که هستی را آفرید خلق الانسان من علق همان خدایی که انسان را از خون بسته آفرید. اقرأ و ربک ال اکرم بخان و پروردگارت از همه بزرگ وارتر است. الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَم همان کسی که به وسیله قلم نوشتن آموخت. عَلَّمَ الْإِنسَانَ ما لم يعلم. به انسان آنچه را که نمیدانست آموخت. كلا ان الانسان لا يطغى حقا كه انسان طغیان و سرکشی میکنند اللهو استغنا چون خود را بی‌نیاز ببیند ان الی ربک الرجعا یقینا بازگشت همه به سوی پروردگار توست ارایت الذی ای پیام بر آیا دیده ای آن کسی که باز می دارد بند ای را هنگامی که نماز می‌خواند؟ ان علی به من خبر بده اگر این بنده بر راه هدایت باشد او امر یا مردم را به پرهیزگاری فرمان دهد سزای کسی که او را آزار دهد چیست؟ آرایت ان کذب و تولا. به من خبر ده اگر این شخص سرکش حق را تکذیب کرد و روی گردان شد آیا سزاوار عذاب نیست؟ الم یعلم بان ان الله یراه آیا نمی‌داند که مسلمن خداوند همه اعمالش را می‌بیند؟ بیند؟ کلا لئن لم ینتهی لنسفعن بین ناصیه چون نیست که او گمان می کند. اگر باز نیاید محققا ناسی اش را خواهیم گرفت و کشید ناصیت کذبت خاطئه همان پیشانی دروغگوی خطاکار را پس باید اهل مجلسش و همدمانش را بخاند سندعو ما نیز به زودی مأموران آتش را فرا می خانیم كلا لا وقترب. چون نیست که او می پندارد هرگز او را اطاعت نکن و سجده کن و به خداوند تقرب جوی. بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی ليلة القدم همانا ما آن را در شب قدر نازل کردیم و ما ادراک ما القدر و تو چدانی شب قدر چیست؟ لیلت القدر خیر من الف شهر شب قدر بهتر از هزار ماه هست تنزل الملائكه والروح فيها بذن من كل فرشتگان و روح در آن شب به فرمان پروردگارشان برای انجام هر کاری نازل میشوند سلام هي حتى آن شب تا طلوع فجر سلامتی و رحمت باشد بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان لم یکنی الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتى تأتیهم البین کسانی که کافر شدند از اهل کتاب و مشرکان از آین کفت دست بردار نبودند تا اینکه برای آنها دلیل روشنی بیاید من الله مطهره پیامبری از سوی خداوند بیاید که صحیفه پاک را بخاند فيها كتب و در آن صحیفه ها نوشته های استوار و درست است وما تَفَرَّقَ الَّذِينَ اُوتُوا الكتاب إِلَّا من بعد ما جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَهِ و کسانی که به آنان کتاب داده شد از یهود و نصارا پراکنده نشدند و اختلاف نکردند مگر بعد از آن که دلیل روشن برای آنها آمد و ما امرو إلا لیعبد الله مخلصین له الدین حنفاء و يقیم الصلاة و يؤت الزکاة و, و آنان فرمان نیافتند جز این خدا را بپرستند در حالی که دین خود را برای او خالص گردانند و از شرک و بدپرستی به توحید و دین ابراهیم روی آورند و نماز را برپادارند و زکات را بپردازند و این است آین راستین و مستقیم ان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه بيگمان کسانی که کافر شده از اهل کتاب و مشرکان در آتش جهنم اند که در آن جاودانه خواهند ماند آنان بدترین آفریدگان هستند. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات هم همان کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند آنها بهترین آفریدگان هستند.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 پاداش آنها نزد پروردگارشان های بهشت جاویدان است که نهرها از زیر درختان جاری است همیشه در آن خواهند ماند خداوند از آنها خشنود است و آنها نیز از او خشنودند و این مقام و پاداش برای کسی است که از پروردگارش بترسد بسم الله الرحمن الرحیم بنام خداوند بخشنده مهربان ای ذا زلزله الارض هنگامی که زمین با شدیدترین لرزه هایش بلرزد و اخرجت من الارض اثقالها و زمین بار های سنگینش را بیرون ریزد وقال الانسان ما و انسان گوید آن را چه شده است؟ تحدث در آن روز زمین تمام خبرهایش را بازگو می کند بی ربك زیرا که پروردگارت به او چنین وحی و حکم کرده است یومئذ یصدر الناس شتاتا لیرو عمالهم در آن روز مردم پراکنده باز میگردند تا اعمالشان به آنها نشان داده شود فمن عمل مثقال ذرة خیرا یراه پس هركس به اندازهٔ ذرهای كار نیک انجام داده باشد پاداش آن را میبیند او من مثقال ذرة و هر کس به اندازی ذره ای کار بد کرده باشد کیفر آن را میبیند بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان ضبحا. سوگند به از پای دونده که نفس زنان به سوی میدان پیش میرفتند و سوگند به از که در اثر استکاک سمشان با سنگها جرقی آتش ایجاد کردند باز سویند به از پایی که در صبح گاهان بر دشمن یورش برند فأثرن بهی نقعا پس در آن هنگام گرد و غبار برانگیزند فوسطن بهی جمعا آنگاه به میان جمع درآیند و آنها را محاصره کنند این الانسان محققا انسان در برابر نعمتهای پروردگارش بسیار ناسپاس است و علی ذللشهیدو بیگمان او بر این ناسپاسی گواه است ونه لحب الخیر لشدید و همانا او علاقه فراوان و شدیدی به مال دارد افلا في آیا او نمیداند که چون آنچه در گور هاست همه زنده و برانگیخته شوند الصدور و آنچه در سینه هاست همه آشکار گردد <تصفيق> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> یقینا در آن روز پروردگارشان به وز و حال آنها کاملا آگاه است بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان القارعه ملقارعه چیست آن بنده؟ و ما ادراک و تو چدانی که آن بنده چیست؟ یوم یکون الناس فراش المبثور روزی که مردم مانند پروانه های پراکنده خواهند بود وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْمِ و وَكُوهَا مانند پشم رنگین حلاجی شده خواهد بود فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ پس اما هر کس که در آن روز کفه میزانش سنگین باشد فَهُوَ فِي عِيشَتِ الراضية در یک زندگی خوشنود و ای خواهد بود و اما من خفت موازینه و اما هر کس که کفه میزانش سبک باشد فأمه مسکن و امه پس مسكن و پناهگاهش هاویه است و ما, ما تو چه دانیک آن هاویه چیست نار حامیه آتشی سوزان و شعلوره است بسم الله الرحمن الرحیم به نام الله بخشنده مهربان <الهاكم التكاثر> افزون طلبی شما را به خود مشغول و از یاد الله غافل ساخته است حتی زرتم تا پایان کارتان به گورستان رسید كلا سوف تعلمون هرگز چونی نیست که شما میپندارید به زودی خواهید دانست ثم کلا سوف تعلمون باز همچنین نیست به زودی خواهید دانست کلا لو تعلمون علم نیست که شما گمان میکنید اگر شما به علم یقین حقیقت قیامت را میدانستید از افزون طلبی و تفاخر به مال و فرزند دست بر داشتید <تصفيق> الجحیم. سوگند که دوزخ را خواهید دید ثم سپس سوگند که آن را با چشم یقین خواهید دید ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ نعیم. آنگاه حتما در آن روز از همه نعمت ها بازخواست خواهید شد بسم الله الرحمن الرحیم به نام الله بخشنده مهربان والعصر، العصر این الانسان لفی خسر سوگند به عصر که انسان در زیان است مگر کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند و یکدیگر را به حق سفارش نموده و یک یکدیگر را به صبر توصیه کردند الرحمن الرحیم به نام الله بخشنده مهربان وای بر هر غیبت کننده و عیب جوی الی جمع وعدده همان کسی که مال فراوانی گرد آورد و آن را شمارش کرد یحسب ان ماله اخلده گمان میکند که مالش او را جاودانه میسازد کلا لئن بذنا الحطمه هرگز چنین نیست که او گمان میکند قطعا در آتش در هم کوبنده انداخته خواهد شد و ما ادراکم و ای پیامبر تو چه میدانی که آتش در هم کوبنده چیست؟ الله المقده آتش بر افروخته الهی است الَّتِي تطلع عَلَى آتشی که بر دلها چیره می‌گردد و می‌سوزاند اینها علیهم آن آتش بر آنان فرو بسته و از هر سو محاصرهشان کرده است فی عمد ممدده افروخته در ستونهای بلند است بسم الله الرحمن الرحیم به نام الله بخشنده مهربان. تر کیف فعل ربک با الفیل آلن یجع الکیدهم فی ای پیامبر آیا ندیدی پروردگارت با اصحاب فیل چه کرد؟ آیا فریب و نقشه آنان را در تباهی قرار نداد؟ و ارسل عليهم طيرا ابابيل تزميهم بحجاره من سجیل. و پرندگانی گروه گروه بر سر آنان فرستاد که با سنگ گل که در منغار و چنگال داشتند آنان را سنگ باران می کردند فجعلهم كعصف مأكول پس آنها را همچون کاه جویده شده ساخت بسم الله الرحمن الرحیم به نام الله بخشنده مهربان لی ایلا فی رحلة ایلا فی الشتاء والصیف برای الفت و انس قرش همان الفت آنها در سفرهای زمستانی به یمن و تابستانی به شام رب پس باید پرورگار این خانه کعبه را پرستش کنند. الذي اطعمهم من جوع من خوف. همان پروردگاری که آنان را از گرسنگی رهانید و به ایشان خوراک داد و از ترس و وحشت ایمن نمود بسم الله الرحمن الرحیم به نام الله بخشنده مهربان ارایت الذی بالدین ای پیامبر آیا کسی که روز جزا را تکذیب میکند دیده ای؟ الذی يدع الیتیم پس او همان کسی است که یتیم را با خشونت از خود میراند. ولا يحض على طعام المسكين و دیگران را به اطعام بی‌نوا و مستمند ترغیب نمی‌کند فويل للمصلين پس وای بر نمازگزاران الذينهم عن صلاتهم نسون همان کسانی که از نمازشان غافلند الَّذين هم يراءون کسانی که خودنمایی میکنند و يمنعون الماعون از امانت دادن وسایل ضروری زندگی دریغ می برسند. بسم الله الرحمن الرحیم به نام الله بخشنده مهربان ای پیامبر به راستی که ما به تو خیر بی نهایت عطا کردیم فصلي پس برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن. این نشان او بدون شک دشمن تو بریده از همه خیرات و برکات است. بسم الله الرحمن الرحیم به نام الله بخشنده مهربان قل یا ایوها الكافرون ای پیامبر بگو ای کافران لا اعبد ما تعبدون آنچرا که شما میپرستید من نمیپرستم ولا انتم عابدون ما اعبد آنچه که من میپرستم نیز شما نمیپرستید ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد و نه من پرستشگر آنچه شما پرستش کرده اید خواهم بود و نه شما پرستشگر آن چه من می پرستم خواهید بود لکم دینکم ولی دین بنابراین آین شما برای خودتان و آین من برای خودم بسم الله الرحمن الرحیم به نام الله بخشنده مهربان نصر الله والفتح. ای پیامبر هنگامی که یاری الله و پیروزی فرارسد و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا و مردم را ببینی که گروه گروه در دین الله داخل میشوند. فسبح بحمد ربك كان توابا. پس به ستایش پروردگارت تسبیح گوی و از او آمرزش بخواه همانا او بسیار توب پذیر است بسم الله الرحمن الرحیم به نام الله بخشنده مهربان تبت یدا ابی لهب و تب باد هر دو دست ابولهب و هلاك باد ما عنه ماله و ما كسب. مال و ثروتش و آنچه چه به دست آورده بود به او سودی نبخشید سيصل نارا ذات لهب به زودی به آتش شعلور در خواهد آمد و امرأته حمالت الحطب و همسرش ام جمیل آن هیزم نیز وارد آتش می شود فی جیدها حبل من مسد برگردنش تنابی از لیف خورماست بسم الله الرحمن الرحیم به نام الله بخشنده مهربان قل هو الله احد ای پیامبر بگو او الله یکتاست الله الصمد. الله بینیاز است و همه نیازمند او هستند. لم يلد ولم يولد. نه فرزندی زاده و نه زاده شده است احد. و هیچ کس همانند و همتای او نبوده و نیست بسم الله الرحمن الرحیم به نام الله بخشنده مهربان قل اعوذ ای پیامبر بگو به پروردگار سپیده دم پناه میبرم من شر از شر تمام آنچه آفریده است او من شر غاسق الى از شر تاریکی شب آنگاه که همه جا را فرا گیرد و من شر نفاثات فی العقد و از شر زنان جادوگر که با افسون در گره ها می دمند و شر حاسد اذا حسد و از شر حسود آنگاه که حسد ورزد. بسم الله الرحمن الرحیم به نام الله بخشنده مهربان قل اعوذ بی الناس. ای پیامبر بگو به پروردگار مردم پناه میبرم. فرمانروای مردم اله الناس. معبود مردم من شر الوسواس خناس از شر شیطان وسوسگر که به هنگام ذکر الله پنهان میگردد. الذی یوسوس فی همان که در دلهای مردم وسوسه می‌کند از جنیان باشد و یا از آدمیان